توجه شما را به گفتار روانشناسی این ساعت راژیال بارس جل بکنم که خانم دکتر کتایون آهنگر روانشناس در مورد رابطه های ناسالم و نوی قطع این نوع رابطه ها گفتار خواهد داشت به آقای کاربران صفحه فیسبوک و شنوندگان راژیال بارس میرسونم اگر چنانچه پرسشی در رابطه با دادای روانشناسی دارید می توانید در صفحه فیسبوک رادیو البرز و یا به وسیله ی آدرس های الکترانیکی مطرح کرده تا خانم کتایو نوهنگر به پرسش های مطرح شده پاسختن ایمیل رادیو البرز راژیو البرز hotmail.com ایمیل دکتر کتایو نوهنگر info at چند لحظه دیگر به اتفاق شما به گفتار روان شناسی امروز گوش می ارز درود امروز قصد دارم کمی در مورد رابطه های ناسالم و چگونگی قطع اونها با شما صحبت کنم همونطور که میدونید اطمام رابطه کار راحتی نیست اما وقتی پای خوشبختی یا بدبختی شما در میون باشه وقتی احتمال بدید که ادامه این رابطه منجب طلاق و یا یک ام عذاب شما خواهد شد بهتر نیست به محض مشاهده هشدارها تصمیم بگیرید بسیاری از ما نبلد هستیم درست وارد راب و نه بلد هستیم درست از رابطه خارج بشیم. اولین سوال اینه که از کدوم روابط باید خارج شد؟ نامزدی هایی که قطعا به طلاق میرسن کدومن؟ زندگی کردن با فردی که مشکلات شخصیتی داره، بدون شک به جدایی یا بدبختی شما منجر میشه. چنین اشخاصی الزاماً بیمار نیستن و اختلال شخصیت ندارن، اما از مشکلات و نواقصی در شخصیتشون رنج می‌برند که میتونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. زندگی سالم حق شما و برای داشتن چنین زندگی نیازمنده هم سر سالم هستید. اگه در, در فرد مورد نظرتون ویژگی هایی رو که اینجا قید می دیدین همین امروز رابطه تون رو با اون تموم کنید. یکی از این ویژگی ها اینه که خیلی خود کمبینه و دائم فکر می شما از اون خوشت نمیه یا تقلای زیادی می که طوری باشه که مطلوب شما واقع بشه اساسا وقتی کسی خیلی تقلیم میکنه که مطلوب ما واقع بشه احتمالا به دردسر خواهد افتاد و ما رو نیز نیزگرفتار خواهد کرد این فتر معطبا در حال رنگ عوض کردنه به شما وابستگی شدید داره و روی کچکتر این واکنش شما حساسه به طوری که هر نوع اظهار نظر کردن یا نکردن رو از سوی شما مناده می پندارد چنی فردی نظر دیگران هم براش خیلی مهمه و به احتمال زیاد با شما و خانوادتونون به مشکل برخواهد خود اگر هم در ظاهر مشکلی وجود نداشته باشه برای از مدتی رویهی که در پیش گرفته شما رو کلافه خواهد کرد و از خواهید شد دوبامی ویژگی افرادی هستن که شکاکن فکر میکنه شما مسئلهی دارین که هنوز نتونستیم موچتون رو بگیره شکاک ها خوبی دارن و از انواع شیوه ها استفاده میکنن تا یه وقت فریب نخورم. خیلی اوقات از یک آدم شکاک در اجتماع مرد یا زن موفقه و هیچ کس باور نمیکنه که اینقدر بدبین باشه. خیلی ها رفتار نامزد شکاکشون رو به عذاب دوست داشته شدن میذارن در حالی که اینطور نیست. شکاک اشتغال ذهنی شدیدی داره که همه چیز رو کنترل کنه و کم کم شما رو نیز بیمار میکنه. او میخواهد همه چیز رو شخصا انجام بده. مبادا دغیا او شما کاری انجام بدین که او از اون بیخبره همه جا با شما میاد، همه کار رو به دوش میکشه، سعی میکنه از رابطتون سر در بیاره، تلفن همراه و ایمیل های شما رو چک میکنه و هیچ حریم شخصی براتون باقی نخواهد گذاشت. اتمام نامزدی با فرد شکاک ساده نیست و پیشنهاد میکنم یا خانوادهتون یا خودتون صریحا به او اعلام کنید که ادامه رابطه براتون مقدور نیست. قبل از این اعلام حتما عکس ها و چیزهای دیگه شخصی که دست او دارید پس بگیرید تا خدای نکرده امنیت اجتماعی شما بعد از پایان رابطه به خطر نیاد. سوم ویژه گیر که نامزد کنترل کننده داشته باشید. او کسی که همه چیز از همه چیز باید خبر داشته باشه تا حس امنیت کنه. معمولا افراد افراد دقیقی هستند و موفق و در خانواده های بزرگ شدن که کنترل لرهای قدرتمندی اطرافشون بوده. خیلی سخته که به شیوه غیر از شیوه خودشون قاونه بشن. معمولاً وقتی دست از کنترل برمیدارن هم خودشون و هم نامزدشون نفس راحتی میکشه. این افراد اگر کمی صدق زندگی خودشون رو تغییر بدن لازم نیست ارتباطتون رو باهاش قطع کنید. چهارمین ویژگی نامزد توجه طلب یا خیلی وابسته به خانواده است. کسی است که فرادیت خودش رو هنوز پیدا نکرده بین احترام به خانواده و اطاعت بدون فکر از اونها هنوز نتونسته تمایز قائل بشه حتی توانایی آب خوردن رو بدون نظر خانوادهش نداره کنیفری شما رو کلافه خواهد کرد و حتی کم کم انتظار داره که شما همچنین رفتاری رو به خانواده او داشته باشید توصیه ما اینه که خودتون رو به دردسر ناندازید و با کسی که بند نافش رو از خانوادهش نواریده وصلت نکنید و حتی ادامه رابطه ندید مرد یا زنی که جنبه های مستقل در زندگیش نداره شریک عاطفی پر دررسسری خواهد بود و مادر یا پدر خوبی هم برای فرزندان شما نمیشه زیرا اونها رمنیز به خودش وابسته خواهد کرد پنجمین ویژهگی نامزده خچیفته است او از نظر تحصیلی شغلی یا مالی موقعیت خوبی رو در اجتماع داره و واقعا چیزی در زندگیش هست که خیلی به او حسه قدرت بده اما اشکالش اینه که وقتی خودش رو قبول داره و در مسائل ارتباطی هم اعتماد به نفس کاذب و دخیل می شما رو آزار می ده. بعدی یه اینه که همیشه در برابر او چیزی کم دارید و به اندازه او ایدئال نیستید. شیشامین ویژگی اینه که نامزدی که در کنار شما باشه براتون جذاب نیست. گاهی به ما میگن که برو تو رابطه بعدن از نظرت خوشت میاد. معمولا این هفت قل خوش اومدن فیزیکی یعنی در مجموع من از تیپ و غیافه و رفتار و اه... کردار این فرد خوشم بیاد و به او کشش جنسی نیز احساس کنن چنین رختادی نیاز به فکر کردن و رابطه طولانی داشتن نداره زیرا بخشی از قضیه ناشی از سرشاعت مغز و عملکرد کرده ها ممکنه که شما برای او جذاب باشید اما او برای شما مطلوبیت نداره ازدواج با این یه همچی فردی خیانت به اون زیرا او برای این توقع همسر شما میشه که برای شما در بالای لیست جذابیت قرار بگیره و هفتمین ویژگی اینه که نامزدی داشته باشید که متعاد به کار باشه او اگر کار کم کنه احساس بیارزشی میکنه بخشی از این اعتیاد به کار به خاطر لذت خود کاره و پیشرفت و درآمده بخشی از اون به خاطر رقابت با همترازان و احساس رشد و مقایسه و بخشی هم شلاقی است که از کودکی در این خانواده به بچه حساب کرده که باعث میشه فرد نتونه لذت ببره از رشدهای خودش و هر چیزی که به دست میاره هنوز نفس تازه نکرده به فکر کار بعدی و پیشرفت بعدی در زندگیش تقی هم نداره میتونه در دانشگاه و درس و متلک تحصیلی باشه میتونه در کار و تجارت باشه از از روانشناختی همه اینها باعث میشه که فرد نتونه از داشته های خودش لذت ببره و همیشه از رسیدن و به دست و بردنها فقط لذت میبره نه از نگه داشتن ها. امیدوارم این برنامه توانسته باشه پاسخ سوال هایی رو که بعضی از عزیزان به صورت ایمیل با من مطرح کردن و در مورد رابطه سوال داشتن داده باشه تا برنامه بعد خدای ها رو نگه دارید